آبراین در پاسخ به اینکه چه بایدت کرد از یه لا گفتش گفته که کلا سر بشر رفت این ایزمهای های مدرن میخواستن بهشت رو بر روی زمین نخ کنن ولی بهش جهنم بود که در هاش باز شد و شناره های جهنم و از دهان تکنولوژی ها داره انسان رو میسوزونه سووزونه از طریق هایی که داره تولید میکنه پس این یک بهشت غلابی و ریایی بود از این ریا بشر بایستی توبه کنه این یک کالای تقلبی بود یک بهشت تقلبی بود بایستی دست بکشه و هزاران پیانبر آمدند تا راه دست کشیدن رو به انسان بیاموزند نابعی این توبه به معنای بالیستیده استادن به مفهوم توقف و مفهوم نکردن نکردن در واقع برسته گفت از یک لحاظ ما گفتیم تاریخ دوم اهل داره محل امروز مرحوف انه از میکر از یک لحاظ محل امروز مرحوف فعالیت های بشری بوده دانش ها تکنولوژی ها فنون فناوری ها هنرها، آزادی ها سیاست ها قدرت ها حیاشی ها بازی ها تفریحات و امروز عصر این فعال داره نقطه مقابل فعل اما میتونیم که این فعال هزار برامار سخت برای اینکه هر کالایی که در قدم رو به به هشت شده تمام کالاها اعتیاد آور شما نیکن از این آدم که بشر میجوه اعتیادش چقدر شدیده از چایی که حتی ما میخوریم ببینید حالا ما باید مخدر را نمیزنیم ما الکول را مسال نمیزنیم برای مثال نمیزنیم از این پفک نواکی و کوکاکولا ببینید ثابت شده که تا چدی اتیاد آورند ما میدونیم که تقوا به زبان همین ما به زبان همسالی اشنا میفرماد که تقوی در یک کلام یعنی ترک آداد ترک آداد ترک آداد یعنی انفعال یعنی نباید کرد نباید کرد خب پس برای این نباید کرد ما اول با هستبیونید که آنچه که داریم میکنیم چی معرفت پیدا کنیم به اطلاعات یا خودمون به عادت های خودمون معرفت پیدا کنیم و ببینیم که هر چه ازار داریم می از کارهایی که داریم می و از چیزهایی که داریم میخوریم و از کردارها ما مبتلا به این کاران که داریم میکنیم و اظ ما از اینجاست از آسمان نیست. از جن و اجنه نیست از آلم جنها و جنها نیست از خود ماست از ماستی بر ماست و از اعمال و کردارها و خوردانی ها و کاله ها و رفتارها و بازی هایی ما بیشترست داریم میکنیم تمام امراض و بیماری ها و زرگر ها و جنون ها و غذبها و آتش های ما از خود ما از اعمال و از مصرف های ما داره برد میاد ما اینو بسی ببینیم این هاست از اینجا داره در میاد وقتی ما ببینیم که ناتش این از اینجاست داره ما رو روح و روان ما رو که هیچ چیزی نمیتونه ما رو لحظه تتسکییم به آرامش بده آن وقت دست میکشیم. پس مننابراین باز ما اگر بگیم خب آخرین سخن در قلم رو به چه باید کرد. چیه بگیم که باید آنچرا که کرده ایم و دائم میکنیم رو بشناسیم و بر هستی آن که هستیم، معرفت پیدا کنیم معرفتی بر واقعیت آنچه که هستیم پیدا کنیم در آسمان ها دنبال علت این بدبختی ها نگردیم در تفکرات به اسطلاف فلسفی و متافیزیک و مشکلات نفته نیست مشکلات در نقد واقعیت های ما نفته است. اصلا ارفان یعنی معرفت معرفتی بر آنچه که هست عرفان یعنی معرفتی بر هستی قلم روی بایستی ها دیگر تمام شده انسان هر کاری که بلد بود کرده و شده این جهنم و از بایستی ها رو کنار بگذاریم و بر آن چی که هستیم اساس آن بایستی ها و چه باید کارت ها رسیدیم بایستی معرفت پیدا کنیم که چرا آن چی دیگر رو بود بهش بشه شد جهنم از دیگرال بایستی گفتش که بایستی جهنم شناسی کنیم چرا آن عمیدیشو و هایی که به ما وعده ای بهشت دادن وقتی به فیل در آمدن جهنمی شدند خب ما می شیطان وعده می و بعد انسان رو در دوزخ سر نگون می کند. این چیزیست که بر ما اتفاق افتاده ما بایدیم بفنیم که در دوزخ, دوزخ شناسی اولین فاز این معرفت بر هستی عرفان معرفت بر واقعیت نقد و موجوده عرفان استور شناسی، شعر و شعار، خیال بافی های سینمایی نیست این خودبخشی خود بخشی از آتش جهنم و بخشی از تقدیس کننده این آتیشه این نوع عرفانی که امروز باف شده در واقع آتش جهنم و این عذابها را تقدیس میکنه که انسان در جهنم بماند و جهنم پرست باشد بنابراین این چبایت کردهای گلاوی، چبایت کردهای دوزخی و ابلیسیست باید دست بکشیم از اینکه باید کرد ها برقدم رو به چه نباید کرد که همون توبه و تنواه هست باید بشیم و انفعال رو بفضیریم انفعال رو یعنی بالیست دادن رو یعنی توقف رو باید بپذیریم. و درست به هم میدهید ما در یکی از صبات در شما داشتیم که بحث حلال و حرام و فقه بود ما گفتیم که علمای اسلامی به خصوص رسالتی دست چندان دارن. در این چرا برای اینکه علماء اسلامی علمای دینی هستند که دین قیامت قرآن تماما قیامت شناسی است تمام محکمات قرآن که معروف به اسوار قرآنی است مربوط قیامت اکثریت این آیات امروز تعین و تجسطون پیدا کرده به فعل در آمده بنابراین علما و مشتهدین جهان اسلام بایستی این فقه آخر زمانی رو تبعیم کنند که این فقه تماما فقه چه نباید کرده فقه انفعاله یک مثالی بود ما یک شب رفته بودیم به یادت یک بیماری یک پیلزن بیماری بود که در همین روستا خانواده فقیریان هم بودن ما مواجبای یک حیرتی شدیم که مخانماده فقیر و بیمار در اینان حال مشکول تماسای فیلم های مستجن بودند شوهای آنچنانی و در این حال هم بودند خیلی متضیم بودن که ما خود خجالت کشیدیم و از تماشای این فیلم و اون پیرزن که این رو درد کرد که پیرزنی ظاهران خیلی مومنیم بود شون برای توجیه حلال کردن این فیلم برداشت گفتش که این رو ما از فلان ملا آخون سوال کردیم گفتش که مستحب است عیبیم ندارد حتی سبب هم دارد سیر آدم وقتی این فیلم هار تماشا میکنه کمتر غیبت میکنه حضرت رسول ترمودن که قیبت جزد گناهان بزرگ و قطعه دوزخ رو باید انسان واجب میکنه ولی که چه حدیث آیه هم که فیلم های پرنوگرافی حرام هست اونا ما این ما این مثال رو زدیم تا معلوم بشه که واقعا مشتهی اسلامی علما و فقا اسلامی تا چه حدی مسئول هستند، و تا چه حدی قفلت ورزیدند. برای مردم باستی روشن بشه این کاله هایی که هر روزی هزاران جدیدترش این کالاهای های دوزخی که عقل و شعور رو از انسان ساقت می کنند و شراره های دوزخ رو بر مغز و روح می‌بارند و تشخیص دست چپ و راست را هم نامکم می کنند و معرفی کنند به مردم بنابراین این چه باید کرد ببینید وصفصه فضاینده چه باید کرد خودش حاصله این همه افتاب لگن های ست تا هزار دست تکنولوژیکی است. که ما بگیم خب از این همه افتاب لگن های تکنولوژیکی با اینها چهاب چه ها می شود کرد و چه باید کرد؟ چرا اینها ها جهنم را پدیدار برده؟ خب یه خالی بکنیم این مقدار آرایش و دکوراسیون رو عوض به بهشتش کنیم. ببینیم تمام چه باید های امروزه حتی جدی ترین و دینی ترین چه باید فقط ترکیه دکوراسیون جهنمه برنامه پنج سال و ده سال و پنجاه ساله کاری جز ترکیه دکوراسیون و دوزخ هیچ کار دیگری ندارن بکنند باستی با خودمون از این وسوسه فضاینده چبایت های تکنولوژیکی نجات بدیم خود تکنولوژی در بدن ذات خودش نمیتونه انسان رو از خودش از اثارت خودش که خودش ماشین جهنمی نجات بده جهنم خودش نمیتونه در خودش احالی خودش رو مداوا کنه و سوزش‌ها و عذاب و ذرش ها و, و جونین ها رو کاهش بده این رو ما بایستی درک کنیم ما بایستی درک کنیم که این تکنولوژی درپ دوزخی که باز شده همونطور که قرآن وعده داده که دوزخ آشگار شد دوزخ آشگار شده این درپ های تکنولوژیست این صنایه یه آتشین و آتشخار خار, نفت خار ما این روایت داریم که از رسول اکرم که در دوزخ ماده اصلی کارخانه دوزخ نفته ما میبینیم که تمام دنیا جنگ بر سر نفته خب بنابراین نفشناسی بخشی از فقه آخر است و هزاران کالایی که از نفت داری تولید میشه اینا کالاهای دوزخی و هر این کالاها را مصرف میکنه چه صورت خوراکی چه پوشاکی باستی بدونه که این آتشها، این عذاب و نار، مغز رو، اعصاب رو، هوش رو، وجدان رو از کار می انداسه بنابراین فقه آخر زمانی، فقه نباید کرد و فقه انفال و فقه دست شستن است و این فقه حاصل ایدولوژی مفهوم حیزی کنم است ایدولوژی مفهوم معرفت شناسیه، ما توضیح دادیم این رو معرفت شناسی و معرفت نفسه پس در اگر معرفت نفس، میشه جهان روشناخت دوزخ روشناخت و فقر آخر و زمانی رو بنا تا دقل مؤمنان و مسلمانان بدانند که چه نباید بکنند حالا غیر از این اگر مسایل دیگری سوال های دیگری هست میشه بیش برداخت ببخشید با توجه به صحبت هایی که شما کردین به نظر میاد که پاسخ سآل چه نباید کرد که در واقع راه توبه و راه نجات بشر از این دوزخی که در اون زندگی میکنه اینه که دست از همه چیز و به خصوص نفس به عنوان ماده اصلی و تشکیل دهنده اکثر کاله های دوزخی دست بکشه و خب این یعنی اینکه، تموم کاله ها و اشیاء و حتی برخی از خوراکی ها رو که رنگ, های، که رنگ درشون وجود داره که از نفت تشکیل شدن رو باید کنار بگذاره و قارنشین بشه ولی خب همچین چیزی امکان نداره پس تکلیف بشر چی و چه کار باید بکنه اگه ممکنه توضیح بدیم ممنون میشیم باید در اگه بخوایم اینطور نیبا بکنیم بخش نظامی از پوشاک ما فرش ما همین این ما گفتیم تکنولوژی ماشین یعنی ماشین دوزخ این اول باید باستی بفهمیم و باور کنیم مهمترین بخش فهم و محرفت بر این واقعی است که رخ داده تا این فهم نشه هیچ را حلی وجود نداره خب ببینید تقوا یا توبیه که امر جدیدی نیستش که ما وقتی میدیم تقوا که یک معناش خیشتنداری و محدود کردن امیاد نفسانی و اماد هست که یک معناش در حیرت قناعت کردن و کمتر مصرف کردن دنیا دنیا پرستی نکردن هست به مفهوم دست کشیدن از دنیا که نیست دست کشیدن از دنیا یعنی خودکشی کردن و در قبر خابیدن بله. حتی در قار هم نمیشه دست از دنیا بکشه کسی که نفس میکشه خودم نفس کشیدن ابتلاعی به دنیاست. خب این معنی واضح اینو درک کنیم پس به این مسئله استی قناعت مصرف پرستی بزرگترین بیماری این دورانه بشر امروز برای کشنگی و گلستنگی خودش که مصرف نمیکنه. از روی جنون و شهوت دیگه داره مصرف می بره این ها هستش که باید علاق بشه تا سوال باستین باشه خب این بشر افسار گسیختر است با قول معروف ترمزش بریده است این چگونه و ببینید شبانه روز حتی خود این دانش جدید اینقدر دوشار ابتال و پوچی و رصفایی شده در قدم روی پیشکی، در قدم روی صنعت رفا شرنشینی در همه مسائل دیگه جبران داره خیلی از شرارت ها و جنون های خودش را اعتراف میکنه مثل مثلا بسیار از داروها مشخص شده آنتی ها و واکسن ها که خود عامل و زمینه بسیاری از ویروس ها و بیماری هایی چیه که هلگل در نداره خب ولی های دست میکشه از اینا تسکه شده نخیل جا همین واخر بود اعلام کردن که پنان محسسه در امریکا اعلام کرده که نوشابه های گازدار هر یک بار مصرف یک بطر از این نشابه های گازدار غیر الکولی مدود 50% قدرت ایمنی بدن رو نابود میکنه تا حدود در 12 ساعت بنابراین بدن مساعد برای پذیرش هر بیماری عفونی ویروسی و میکروبی هست خب با این اخبار آیا بشر نشابه خوردن رو کمتر میکنند؟ رنگ نشابه عوض میکنند یه اسم دیگه روش میزنند یه گاز دیگه درش میریزند میگن اقای این مشکل هست شد این کار تازه آن نشابه جدیدی که برای ترک نشابه های قبلی اومده خودش به مراتب محلکتره و عذاباورتره ببینید پس اطلاعات و اخبار و آموزش‌های علمی، فنی، تکنولوژیکی ما می‌بینیم، نه تنها کمترین کمکی به بشر نمی‌کنه، بلکه اصلا بشر رو پوچ میکنه از لحاظ آگاهی و ذهنیت و بشر امروزه به این خودمسخرگی علمی رسیده مسخرگی. چه چیزی به انسان این قدرت تشخیص و اراده رو میده تا انسان بتونه از این کاله ها و مواد و مسائلی که دیگه محلک بودنش عذابابر بودنش مورز و مسلم شده دست بگیرد دارد یا کمترم اصطف کنه اونها رو این سوال برخی ها میگن آقا کار از این حرف گذاشته ما نماز میخونیم دعا میکنیم نظر و نیاز میکنیم کمتر کام درست بکشیم خب اینا امتحاناتشو بس داده فلسفه نماز میخوانو هر چه خواهی کن رو واقعا ما تو کشور خودمون امتحاناتشو بس دادیم که جز جنون و عذاب فوق عذاب این نتیجه دی نداشته و خودش زمینه اشد نفاق ها و توهکاری ها شده این نماز نیست که ما این کاله های جهنمی رو هر چقدر که دلون میخواد مصرف کنیم و با ورد و ذکر و نماز رفع عصب کنیم خوب. دعا رو رسول اکرام می که دعایی که با معرفت نباشه اجابت نمیشه این دعا از روی جنون و تجاهل دعا اجابت نمیشه وقتی میدونم که آقا جو این, این چیز مزرره خواه نبایستی مصرف کنم نشه خدای من میدونم که مزرره ولی تو یه کار کنم که نباشه این که واقعا دست انداختنی اصلا قوانین الهی و کارگاه خلقته خوب. پس واقعاً چه چی چیزی به انسان این قدرت رو و این الادر رو میده تا انسان بتونه حتی از دانش و تجربه خودش استفاده عملی بکنه و وقتی تشخیص میده که این شر دست از شره بگشه تا کمتر عذاب بکشه در همین دنیا کمتر عذاب بکشه. نه در آخرت در بز از بزرزمت ببینید این مثلا واضحه. انسان هرچی که بیشتر یک چیز رو نگاه کنه بیشتر حوث آن چیز رو میکنه خب ما این شیار را در با مثال داریم از دلبره و در آنچه از دیدره بود. انسان ما یه چیزی را کمتر نگاه میکنه کنه کم کم هواش چه از انسان تر خب همین چگونه ممکنه؟ ببینید ما قبل هم گفتیم درست اکنون می که زین پس فقط راه معرفت نفس یعنی خودشناسی نخودشان که به حقایق دین من می رسند آنها تصیر میکنند و الاستراور می شنند. خودشان این در اون بنابراین انسان به میزانی که چشم از این زرق و برقه های دانش و کالا های دوزخی چشم بر میداره چشم میبنده و اندک یک حدود از دقل یکی از چشمش رم رو به درون خودش میکنه در معرفت نفس خودش قرار میده رو به دل میکنه رو به دل میکنه رو به خدا میکنه دعای حقیقی نماز حقیقی امروز معرفت نفس. برای همین اقامه سلاتی که توش معرفت نفس نباشه هم نتیجهش چه بسا عذابه و مستاق فویل المسلین این فویل المسلین در قرآن مستاقش امروز است وای بر نمازگذاران صحبی و ریایی ای صحبی نمازگذاران جاهل ببین خود اقامه سلات هم نداره الا اینکه که از معرفت نفس باشه باطنگرایی ببین بررسی ظاه بررسی این بیرونگرایی خواه انسان به میزانی که رو به خودش برمیگردونه کمتر این زرق و برخارو این چشم های بیسی و تلویزیون‌ها و این تبلیغات ها رو میبینه بینه چشم از چشم شیطان بر برمیداره رو به خودش میکنه رو به دل میکنه رو به خدا میکنه از خداوند این قدرت اراده رو رو میگیرهواه معرفت نفس خودشه. این شهامت و این تشخیص و این قدرت تقوا و خیشتنداری و بازیستادن پیدا میشه وگرنه دریای از این اطلاعات علمی فنی راست و به اراده انسان کمترین کمک کمکی نکرده تا این کارهایی رو که میدونه نبستی بکنه نکنه انسان امروز آگاهانه اکثر کارها رو که میکنه میدونه خلافه الازی علمی ثابت شده به تجربه براش معلوم شده که عذاب آوره ولی نمیتونه که نکنه. فهم؟ خب بنابراین باز معرافت نفس. الان چه کار؟ دین وسان بین معرافت نفس، همین دین عرفانی. یعنی به تجربه هم در کشور ما شد که شریعت به خودی خود عمل نمیکنه. و تو فسادبالا میشه، رسوایی میشه و خودش عذاب فوق عذاب پدید میاره. شریعت به خودی, خودی خود کافی نیست. انسان به قدرت معرفت نفسی میتونه شریعت رو اجرا کنه به فعل در بیاره با کمات معرفت نفس که انسان میتونه تابعی همون عقل علمی خودش باشه علم به خودی خود در انسان قدرت و اراده و توانایی ایجاد نمیکنه توانا بواد هر که دانا بود تا اگر یه زمانی عمل نکازه موزه جواب نمیده این سخن یا غلطه یا اگر راستا بوده منظور از دانایی این دانش اخباری مدرسه کتابی فنی نیست دانایی اگر مرفت نفس باشه این شیر درسته در قریب سر این شیر خودش جهده ما می‌بینیم که اتفاقاً داناترین آدم ها لازم اخبار و اطلاعات و آموزش‌ها و رسانه ها که در شهرهای بزرگ هستند هم هم دریای کیس در جیبشون دارند امروزه هر کسی از هر چیزی اخبار داره یک بچه ساله امروزه از یک دانشمند۳ سال پیش هزار بار بیشتر تو اخبار داره این اخباریون ما می‌بینیم که اتباقا از آدم آمی بی سواده و روستایی نیست دارای اراده‌ای کمتر کوشی کمتر و تشخیصی کمترن و لضا در عذاب‌ها ها و جنون های بیشتری زیست می کنند و از ابتدی ترین شور خودشون هم نمیتونن ااعتارت کنند اقل از این جدا شده دوشو ده عهد در اینها عمل نمی کنه تولید اراده و قدرت نمی کنه ولی منظورم فکر بگم در میاد واضیه ببینید ما بخوامین جنبندی بگوینم از صباطامون ناورین بایستیم از این کالاهایی که امروز اکثریت قریب به اتفاق این ها از حوزه تکنولوژی در میاد که آتشین ترینش کالاهای نفتی است تقریباً کالایی نیست که توش نفت نباشه امروز خب مبوسی بس قناعت پیش کنیم کمتر اینا رو مصرف کنیم. با اسنار مصرف نمیکنیم نکنیم تا اونجا که نکنیم یا کمتر مصرف کنیم. مثلا قناعت اگر میگیم سنگ زیر بنای پراکسیس دینی قناعت عملی دینی اون گوهرهای عملیش قناعت است. خوب، امروزه به نظر زمانی ما مجبوریم قناعت کنیم. کمتر مصرف کنیم با. امروزه بشر جنون مصرده که اونو دیوانه و لنجورد کرده هزا برابر بیش از دو روحان قبضاره میخوره و لازه جسمانی دوشاره کمبود کمخونی و کمویتامینی و کمبود پروتئین. و هزا جور مرضی که اینا مالی خودیایی معنی نمیده اصلا ببینید در جهانی که ما میکنیم ما ترابعا میتونیم سه محور دوزخی داریم که سه محور عذابهای انسان هستن این سمهور در واقع میشه گفت سه نوع فکر و سه نوع ارزش زده انسانیه دیگه تکنولوژیزمه تکنولوژیزم نه تکنولوژی تکنولوژیزم یعنی مکتب اصالت تکنولوژی و تکنولوژی پلاستی. هر از تکنولوژیست حق از درست است و باعث تکنولوژی اطاعت کرد این شاراه برود به دو زخه از این فکر باز و بکرد دو معنای دیگرش که محصول تکنولوژیزم هست اراده به قدرت که در امپریالیزم خود نوایی میکنه ببینید ما در صحبت قبلی گفتیم که آدم های حتی بچه های امروز بلقوه و فن نفسه امپریالیست هستن بچه ها همه قول بچه آدم خار و جهان خارن همه سودای های سلطه بر کل جهان رو دارن حتی بچه ها که های که بز و از دوم دومه دوم این شرارت دو دوزخیت و عذابها راده به قدرت در قلمرو رو به آزادی های انواع اخصام آزادی های که بشر امروز از تر جنون برای این نوع آزادی های جهنمی آزادی حتی هم بده از روی جهل و جنون خودش که اسمش آزادی عمل این آزادی عمل اگه اسمش آزادی باشه آزادی عمل آزادی خودبراندازی و خود آزاری این است اینم ایده ایدئالیت که انسان باستی ازش توبه کنه ببین از تکنولوژی باستی انسان تماما توبه کنه از امپریالیزم می بلغوه نفس که اراده ای به قدرت جهانی است که در آزادی گرایی های جونامیز خود تونمایی میکنه باستی از اینیت توبه کنه از ایده آزادی عمل به این معنا که ما ببینیم باستی توبه کنه باستی و می محوری که قلمرو روی فرهنگ هنر و جلوگری هایی به هنری تبذیباتی است که عرصه خودنمایی ها و جلوگری های نفسی بشنه که عملاً عرصه فهشای نفس انسانه تماماً در قلم هنر لطیف‌ترین بیان رو داره که جذابترینش قلمرو سینما و رسانه های تصویری است که قلمرو روی مفتخرانه شده امروزه و این هم ایده سومه، بوت سومه، لازم معنا و فرهنگ از این سه تا از این سه ایده شیطانی و دوزخی باسته اوتور بکنه تکنولوژیزم به معنای تکنولوژی برستی امپرنالیزم به معنای اراده به قدرت نفسانی و آزادی‌های فردی ببین انسان های به میزانی که طرفتار آزادی های افسار گسیخته نفسانی هستن اصلا امریکا و آقای بوش رو اوتوماتیک نمیتونن که نفر هستند و میفرستند برای اینکه اون و امام این نوع ترده سکره و سوم هنرنمایی جلوگری خودنمایی که عملا قلم فحشا و رسوایی مفتخرانه هست که در انواع و هنرها انسان بروزه چنین خودنمایی ها و جلوگری ها و رسوایی رنگ به رنگ رو پیدا میکنه از این سه رو و لازف فکری بایستی تماما توبه کنه این توبه مستلزم معرفتی بر این وضعی است. اصلا بس که این تکنولوژیزم مطلقا رفانه نمیاره این امپریالیزم که در قالب آزادی و دموقراسی رو شعار میده نه اصلا آزادی میاره نه برابری در رعی انتخاب میاره همینه جنون و واضی و مالی خولی از بالی چشدنه اصلا بخونه که در این, در این هنر سینمایی و هنرپرستی سینمایی این خودنمایی ها به شکل مدها منکنها پوشش های مالی خلیه های عداقتفار های جنونی که شبان روز از طریق رسانه های تصویری های تبلیغ میشه بسیارت اولگو باستی بفهمه که در این هنر نیست در این ستایش نیست این یک خوددیوان سازی و روسپیگری خودخواسته است این فاحشگی رنگ برنگه روگری های جنسی سنتی ترین و کمز کم را سرییدش اتفاق. وستیب از معرفت نفس پیدا کرد بر واقعیت این تا معنایی که سه درب اصلی 12 رو باز میکنه از این ایده ها از این فکرها هستید. انسان توبه کنه بر اساس این توبه به همان میزان انسان قدرت اراده به دست میاره تا بتونه به شور و ا و تشخیص خودش گام به عمل کنه وقتی میبینی که این چیز انسان رو میسوزونه آدم دست از اون چیز بکشه برمیزادی بنابراین در دیگه کلام منوای نتیجه میشه گفتش که امروزه در قدم رو به نباید کرد بایستی از این سه معنا انسان توبه کنه. این اولین گام باحتمی این سه تا نبایت کرده ذهنی در قدم روی است از اینجاست که انسان در برون هم یواشواش چشمش راستر میشه صاحب شعور عملی میشه تا بتونه تقوا و قناعت پیش کنه حداقل در این سقوط آزاد در اماق دوزخ سرعت خودشگاه هم بگم کمتر. و از نابودی حتمی و از این سقوط آزاد از درجه نجات بده این کمترین کاری است که انسان میتواند بکنه و بایستی اون به نظر میاد که در یک برداشت اجلون و سطحی از این مباحث کو اینکه ما دعوت به رجعت به قارنشینی میکنیم و یا اصر حجر خوب چنین برداشتی اگر باشه که معمولا در برداشتهای سطحی و مقرزانه چنین به دست میاد نیاز به توضیح است یا برخی چنین میپندارند که ما به سبک مذهب ژان ژاک روسو دعوت به بازگشت به طبیعت میکنیم طبیعتگرایی ناترالیزم رومانتیک برجوهایی مدل اروپایی که رسو از پیامبران این مکتب بوده و امروزه هم ادامه اون مکتب هنوز به شکل نزده های هیپیگری لاعبالیگری ها در ویشی های کازب تطع انابین و تفاصیل مختلف وجود داره و شعبات دیگرش نزده اصالت گیاهخواری و خامخاری و اینجور و دیدار ما شاهد بودیم مدل های این مقدار پیشرفتتر و مدرم ترش شاهد شاهدنیرزت های حفاظت از محیط زیست یا این احضاب سبزی که در اروپا و اخیرا در آمریکا و در سراسر جهان داره پیداشون میشه که به نظر میمثل اینا بر احساس گرایی دارن یک سیاست و مدنیت جدیدی رو میخوام پرییزی کنند. خوب اولا بر نیز کمی ماهیت این نوع طبیت گرایی ها در طی این دوسره اخیر تا به امروز نگاهی داشته باشیم. قبلا هم مساله رو ما کردیم. ماهیت و هم همچنین این عملکرد این نوع طبیعت گرایی های اثر شکم سیری، هم در عمل واضح شده که کذاب است این ادعاها این احضاب سبز یک نمونه خیلی واضحه کذابیت این ادعا هستش این احضاب سبز امروزه در اروپا و در تاریخ جدید و در ده آینده میره که مبدل به مسلطترین و قدرتمندترین احضاب سیاسی جهان بشن در اروپا این بر بحشقا به توجه در پارلمان ها رو در دست دارند ما میبینیم که دعوای بین این اعضاب به صلاح سبز و سایر اعضاب واقعا یک دعوای زرگری است خود مرکیتزی است و برای تصفیه حساب حزبی و گروهی و برای منافع تسلیحاتی و صنعتی خودشونه ما میدونیم که به طور مثال در دههای اخیر شاهد بودیم که در فرانسه و آلمان در زمانی که این عذاب سبز بخشای قابل توجهی از دولتها و پارلمانها در دست داشتن در دوران حاکمیت همونها سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی به کشورهایی مثل عراق داده شد تا بر علیه ملتها بر علیه ایران به کار گرفته بشه و اونا در جریان بودن و موقع بساطهاش رو در نمی پس این یک دروایی زرگری و درواییی بقاییت منافقانه به نظر ما این عذاب سبز حق باستر از ما بقیه هستند و اینا واقعا دیلشون نواسه محیط زیست سخته جان و سلامت مردمان جان سوخته. اینا بازی های که تشکیماییتش روح است. همچنین این سازمان ها و تشکیلات ها زیست ما در عمل میبینیم که خودشون اصلا یک و هستند کمترین اثری در سلامت محیط زیست نداشتند و بلکه خودشون در این سوداگری ها دارن شتل می و دنبال منافی خودشون هستند در عمل در واقع باستی گفتش که ما طالب رجعتی به طبیعت هستیم ولی نه طبیعت حیوانی و جانوری بلکه طبیعت انسانی بشر هزاران سال قبل از دوران تاریخ تمدنش به صورت میمون در جنگل‌های های هندوستان داشتیست می کرد. و غرق در لذت حیوانی خودش بود موجودی تماما طبیعی بود آن بهشت جانوری بهشت آدم و هوا هم در واقع میشه گفت از همان بهشت جانوری خروج کردند پس آن بهشت جانوری چنگی به دل انسانیت انسان نمیزد که انسان ازش خروج کرد امروزهم ما میبینیم که این معزلهٔ مهاجرت از روستاها به شهرها و تخلیه شدن روستاهای عظیم و پربرکت متروکه شدن هزاران روستا امروزه در خود کشور خود ما در همه دنیا قضیه اتفاق افتاده نفرت روستایان از زندگی طبیعی خودشون خودال بر همین تقیان بشر برای زندگی طبیعی خودش از یک لادین همان کفر آدم و در بهشت طبق کلام خدا هر چی که میخواستن نقد بود و در آنجا به هیچ زعمتی اینها تأمین میشدند و هیچ عذاب و زجری هم نداشتند ولی تقیان کردند و خروش کردند و قدر آن حیات طبیعی رو ندونستند خوب این خودش یک سرزیه حالا ما درباره این سر نمیخوام صحبت کنیم ولی این واضعه که کل این تمدن چند هزار ساله اخیر که به امروز رسیده در یک کلام تمدنی ساصل جنگ بر علیه طبیعت این تمدن ذاتاً طبیعت ستیز دشمن طبیعت طبیعت از منظر اعطاقاد دینی ما طبیعت سفره رزق خدا برای بشره در واقع جنگ انسان مدر، انسان صنعتی برای طبیعت بزرگترین نشانه کفر اوست خب ما میدونیم که امروزه یک انسان شهری وقتی حتی برای تفریع و های خودش برای چند ساعتی یا چند روزی به طبیعت میاد چگونه در طبیعت حساس ناامنی میکنه و با طبیعت چه دشمنی داره نزدیک از یک طرف اداوت شهرنشینان با طبیعت و زندگی طبیعی است از یک طرف خود روستانشینان و آنهایی که در طبیعت زندگی میکنند هم تحت القاعات و کفر این تمدن صنعتی با زندگی طبیعی خودشون اداوت دارند و لذا با این زندگی به اون بست میرسند و چار حقارت میشند و گله گله به شهرها میرند و در آنجا به خفیف و غلیلانه ترین معیشتها تندر میدند ولی زندگی طبیعی رو زیر پا میگذارند با همه این ها ما امروز می‌دونیم که در اعماق شهرهای بزرگ سنتی آخرین آرمان بشر متمدن و سنتی امروز اینه که یک چار سبایی رو حداقل در بازنشستگی خودش بتونه در آغوش طبیعت زیست کنه این آخری آخرین امیدشم که به همین امیدشم هم موما نمیرسه در این حال این را میدونیم که ها و پولدارها و آنهایی که مال مردم را غارت کردند و انباشت کردند اکثرا در دل طبیعت در جنگلها در دامنه کوهساران در قلب دریاها و جزایر کاههایی میسازند که تحتیلاتشون رو برن اونجا به عیاشی و در اونجا ساعات و روزهایی رو میگذرونن که زندگی بهشتی اون اصال میشه هرچند که اونها همون فساد و عیاشی زندگی شهریشون رو میبرن در اون طبیعت اجرا میکنند برای همین دو روزی بیشتر نمیتونن در اونجا باقی بمونن ما یک مهمانی داشتیم در فلایات و روزهای خودمون که از شهر اومده بودن چند روزی پیش ما بمونند یک شک نگذشت. این میمانان شهری حملات جسمانی دو ساله، تحو اساب استفراغ شدن و حملات روانی و عصبی است که هم فرو واشیدند. و از جمله حرفایی که میزدن این بود که واقعا سکوت اینجا مرگ‌آوره. ببینید، سکوت آرامش به مزاج و مزاج بشر کافر شهرنشین دودپرست پرست نیمی سازه. این خودش از نشانه‌ها کفر در واقع خود طبیعت هم بشر کافر رو پس میزنه، تحقیل نمیگیره، نامن میکنه، حراس و در داره میاندازه، اون رو ترد کرده، خود طبیعت هم بشر کافر رو ترد میکنه. همینطور که بشر کافر با طبیعت یعنی به همان سفره رزق الهی خودش به جنگ برداخت و برای همین امروزه هر چیز طبیعی در منظر انسان صنعتی حقیره، بیارزشه، هر چیز هر چیز که صنعتی تر باشه با ارزش نگاه کنید امروزه حتی در خود کشور خودمون که ما بعد از انقلاب از شعارهای درجه که انقلاب ما استقلال اقتصادی بود و بر اساس احیا و توسعه زندگی روستایی و کشاورزی قرار بود شکل بگیره ما دیدیم از آنجایی که این باور قلبا وجود نداشت نتیجه معكوسی داد و با طبق خود آمارهای رسمی بیش از پنجاه هزار روستای بزرگ آباد در طی این سالها بعد از انقلاب کاملا مطفوکه شد و همین رستایی هم به در آنجا به کارهای خلاف به کارگری های خفیف و خار به دریوزگی ها و به قاچاق و دلالی و به هزار فساد گرهیدند در اونجا هم شرها را ناهمتر کردند و هم روستاها رو خراب و تباه کردند و دیگه راه بازگشتن به آسانی ها ندارند بنابراین این واضحه که دعوت ما به طبیعت بازگشتی به طبیعت انسانی است. طبیعت انسانی هزار برابر زیباتر و عادیتر از طبیعت گیاهی و, و حیوانی است. انسان به میزانی که نسبت به طبیعت انسانی خودش بیگانه شد نسبت به طبیعت جغرافیایی بیرون از خودشان بیگانه شد و نسبت به اون ادو شد. همینطور که آدم هوا به میزانی که نسبت به جاودانگی روح خود کافر شدند خود زندگی بهشتی که اما زندگی طبیعی بود هم براشون غیر قابل شد. طبقه خدا به زور اونها را بهش بیرون نکرد. اونها خود در بهشت دیگه آرام و قراری نداشتند. این آرام و قرار رباتنیشون از دست رفت، آرام و قرار در محید زیستشون هم تباه شد. آرامششون از دست رفت. دیگه در اون طبیعت احساس امنیت و عزت و جاودانگی نمی‌کردند، با اون طبیعت نمی‌تونستن رابطه برقرار کنند. در حقیقت انسان به میزانی که اهل ایمانه با خداست و اون روح و جابدانیگو خودش حاضر داره طالب زندگی طبیعی با طبیعت دوست میشه از طبیعت لذتی برای طبیعت هم او رو با آقوش باز میپذیره و از رحمت خودش او رو برخوردار میکنه و از روح میکنه این رو هم ما میدونیم همطور که در باران کریم آمده که همه رسولان، انبیاء، اولیاء و امامان و شاهدان از قرآه ها یعنی از رسته ها برخواستن اونشون میده که در شهرهای بزرگ اصلا جای ایمان و حفظ ایمان نیست گویین که اصلا در شهرهای بزرگ کسی نمیتونه ایمان رو خوش رو حفظ کنه در شهرهای سندهی نمیتونه ایمان رو حفظ کنه حتی ما که نگاه کنیم باید دقیقه میبینیم که حتی شهرهای بزرگی هم که امروز بزرگ دارند، همشن در دورانی محل اقامت یکی از این مردان حق بودند برای همینه به تاریخ و مبدع آغاز هر شهری که رجوع کنیم میبینیم که یک قدیسی یک امامی، امام امامزاده یک حکیمی یک پیامبری در اونجا اول سکونت داشته اونجا یک دشت و چشم و جنگل و کوه و روستای بکری بوده اصلا اونها اولین ساکنانش بودند و بعد از فرزندان آنها از پیروان آنها ن شهر کم, -کم توسعه پیدا کرده. خیلی از شهرها با اسم این مردان حق عجینه در خود اروپ ها مدتا بودود داره این کلمه سنت که در آغاز خیلی از شهرهای بزرگ است یعنی قدیس مثل سان فرانسیسکو مثلا سانت بار بارم مثلا ساند لویس مثلا رو در اکیس برای شرکی ما این قضیه داریم اصلا بانیان این شهرها خود این قدیسیم بودن مردان حق بودن آنها اون موقع در زندگی طبیع زندگی اینها بجرا اینکه در آنجا امنیتی پدید آوردند که مردمان یواش واش بر مدار وجود اونها احساس امنیت کردند و تونستن زندگی بکنن بعدها فساد کردند بر زمین و اون عزت و آرامش طبیعی رو از دست دادند خداوند در قرآن میفرماد که کافران زمین و آسمان ها رو حتی به فساد میکشند. این مساق این آیه بیشتر رازی است زمین که کاملا به فساد کشیده شده است سبای شهرها تشعشعات رادی حتی دریاها را هم سالم نگذاشته این گرمای گلخانهی سنایه و نفت و پتروشیمی آسمان را هم سراخ کرده به قرآن لایه وزن را و تشاشات مرگبار فوق جوی داره احالی زمین را بمباراند می و هزاران بیماری و عذاب پدید آورده و کل این همان فساد آسمان هاست که کافران از طریق سرعت پرستی و عدابتشون با طبیعت خدا طبق آسمان رو به فساد کشیدن انا زبال های اطومی دیگه زمین هم کم کم داره خطراتی واقعا مرگبار ایجاد می بنابراین بازگشت ما به طبیعت بازگشت ما در جوال به طبیعت انسانی است انسان به میزانی که به طبیعت انسانی خودش بازگشت میکنه طبیعت انسانی همان خداییت و روح انسانه آن بهشت مطل در باطن و در دل انسانه این بهشت طبیعی در بیرون صورت خاکی اون بهشت باطنیست اون بهشت باطنی همون بهشت بهشت قلبی هزاران برابر نابتر جابدانه و پاکتر و لذیذتر از بهشت طبیعی و جغرافیایی است. ما در قرآن اگر نگاه کنیم هر جا که در آیاتی وصف بهشت شده همون بهشت مقود ما بهشت مقود عین طبیعت بکریست که در بر روی زمین هست. هیچ چیلی عجیب قلیبی نداره دشت ها پرندگان و رزق حلال و فراوان و با عزت ببینید این ها هست شیر اصل. پس به هشت موقود همی در قرآن شده یک بهشتی هشت کاملا زمینی و این همین طبیعت بکر و پاکی هستش که بعد روی زمین بوده و بشر داره اون رو نابود میکنه پس بنابراین به هشت موقود همین بهشته ولی انسانی لایق زندگی طبیعی میشه که تونسته باشه به طبیعت انسانی خودش به ذات انسانی و خدایی خودش بازگشت کرده باشه به میزانی که انسان رو به خدای دل خودش میکنه خداست آن در بهشت میتونه این بهشت بیرونی رهم اصلا لایقش باشه تا بتونه این بهشت بیرونی رو تعمل کنه و بلكه ازش لذت رو ببره نفرت انسان از زندگی طبیعی همان کفرش بزرگترین نشانهی فر حراس انسان از طبیعت و زندگی طبیعی. شما نیا حتی در کشور خود ما کلمه دهاتی بزرگترین فش و احانته شاید کلمه هغارت بارتر و توینامیستر از کلمه دهاتی نباشه انسان وقتی میخواد یه نفر تغییر کنه بشن دهاتی. خود همین لغت نشون میده که تا چدی بشر امروز کافره آقای خود ادهاتی هم نسبت به خودش متاسفانه کافره چون نسبت خودش کافر شد نسبت به اون رزق طیب و طاهر نسبت به اون آرامش و عزت و امنیت طبیعت خودش طبیعی خدادادی خودش کافر شد در اونجا احساس هقارت کرد و هرسوبلای زندگی های کاذب شعری و دربهای جهنم شر او رو کم وسوسه کرد و بهشت با پای خودش ترک کرد و با آغوش جهنم رفت حالا در آنجا هنم داره داد میزنه میزنه ولی نمی توانه برگردد چه واسه میخواد برگرده ولی نمی توانه برگردد ما بتونیم که بین این بهشت طبیعی و اون بهشت آخربی فرقشان نیست این همان است ولی بهشتی عالی تر از بهشت دوباره بهشت دل انسانه انسان به میزنه که بر بهشت دل که از روی ایمان و خدا برای وارد میشه که همون راه به بخیش و معرفد نفس هست لایق با خورداری از زندگی طبیعیه میشه وگرنه انسان بهتری هم پای تلویزیون میشینه و طبیعت رو از طریق منظره هاش تماشا کنه و حسش رو بخوره بنابراین واضحه که ما طرفدار های پلپوتی و طالبانی نیستیم اینها رو پس دادن اینها در واقع خواستن با ابزار تکنولوژی به جنگ تکنولوژی برند یعنی با عبزار کافرانه به جنگ صاحبان تکنولوژی برند و این غلط بود و ناممکن بود انسان با شیطان نمیتونه به جنگ شیطان بره انسان به یاری شیطان نمیتونه شیطنت رو براندازه. این چیز واضحی به زور نمیشه به مردم بهشت داد چون خدا هم به زور آدم حوال از بهشت بیرون نکرد خودشون در آنجا کلافه و بیزار شدند و بی رهل هجرت بربخستند و از بهشت خارش شدند بنابراین بهشت با شوق و طبق احادیث اسلامی ما داریم که بهشت لایق کسی است که عشق معرفت داشته باشه انسان به میزانی که عشق معرفت داره بهشت دانشگاهی معرفت میشه یعنی انسان در بهشت طبیعت در آرامش طبیعی عقل و شعور و وجدان علویت و روحانیتش خلاق میشه و میتونه کسی معرفت کنه بنابراین بهشت عجر عیاشان و عجر بهشت پرستان میست بهشت عجر معرفت طلبان و حق جویان هست این را باسی بازی بدون تای های که با ثروت و اشرافیت به دست میاد انسان اگر بره در قلب جنگل های زیبای جهانم کاخ بزازه در آن هم لذتی نخواهد برد و در آنجا دیوانه خواهد شد و اون زندگی طبیعی که با اشرافیت و کف دست اومده هرگز به کسی فیضی اذتی سلامتی نرسند بنابراین بهعنوان جنبندی آخرین کلمات بایستی بگیم که کمتر این کاری که انسان امروز به میزانی که معرفت پیدا میکنه معرفت بر اینکه این حیات سنتی همان در پای دوزخ است معرفتی که برای دو دوزخ پیدا میکنه خود این معرفت راه بازگشته به طبیعت رو براش واز میکنه راه برخورداری طبیعی رو بر واز میکنه این معرفت بر دوزخیت این تمدن و این صنعت پرستی و تکنولوژی پرستی و این استقبار پرستی و قدرت پرستی های صنعتی و تسلیحاتی موجب میشه که انسان توبه کنه در باطن خودش از این جهل خودش از این پرستش های و ناحق خودش و استحقاق زندگی طبیعی بشه و انسان به میزانی که به حداقل این معرفت میرسه و تصدیق میکنه این دوزخ رو که این واقعا دوزخ است. و گول نمیزنه خودش رو یاباشه از این دوزخ خارج میشه و خداوند راه زندگی طبیعی و بهشتی رو در همین دنیا برو آسان و هموارو ممکن میکنه در قرآن اومده که ای رسول آیا ترجمه نمی‌کنید که کافران چگونه در آتش دوزخ صبرونه میسوزنند ببینید بنابراین ما اول باید دوزخ شناسی رو یاد بگیریم و بفهمیم آنچه که ما بهشت داریم دوزخ ماست و آنچه که نمیگذاره که ما تن به این آتش دوزخ بدیم و صبورانه بسوزیم معرفت ماست معرفت بر دوزخ در حقیقت حق حیات بهشتی به ما نشون میده و دیگه تا به تحمل ماندنی در این دوزخ رو نخواهیم داشت و از این دوزخ خارج خواهیم شد و تن به خفت و خاری این آتش و دوزخ نخواهیم داد بنابراین بقول توزخی جز بیمعرفتی نیست این کلام رو نتیجه دیگری که از این کلام گرفته میشه اینه که به هیچی جز معرفت نیست به جز معرفت نیست معرفت نفس بنابراین اگر بخواهیم به اون سوال آغاز این جلسه بپردازیم که چه باید کرد؟ اینه باید این دوزخ را شناخت و در دوزخیتش شکی نکرد دوزخ وقتی شناخته بشه این شیطان شناخته شده شیطان وقتی شناخته شد کم کم از انسان فاصله میگیره و که شیطان فقط مکره انسان وقتی مکره کسی رو شناخت اون طرف دیگه نسبت به آدم مکر کنه بعد دوزخ شناسی یعنی شیطان شناسی و این معرفتی بر شیطان و دوزخ چون سلاتین دوزخ شیاطین هستند این شان ها به صورت ووسسایل مختلف از انسان رخت برمیبندند و این راه خروج از توزخه و زمینه استقاق زندگی بهشتی است که در حقیقت همان زندگی طبیعی در آغوش طبیعت و استقاق نفس تر و تازه کشیدن و هوای پاک و استشااق کردن خودش امروزه یااقت بسیار بسیار بزرگی میخواد که آدم تا به تعمول استنشاق هوای پاک رو داشته باشیم.